بسم الله الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوه الا بالله لا بالله الذي نظيم وصلنا سيدنا محمد الله الله الله محمد و الله صلى الله عليه وسلم الله على بيته الطاهرين المهديين سیما بقیت الله في السماوات بل ارزیم بالله من الشيطان الرجيم بلو اراد سبحانه ان يزع بيته الحرام و بشاعره العزام بین جنات و وسهل و سحل و اشجار دان ثمار ملتف البنا متسل القرآن بین برّت سمراء و روزت است به همدلله این مناسبت و ایام خدمت برادران و خواهران معظم در گلستان سخنان امیر به گلگشت مشغول بودیم و استفاده می کردیم از خطبه قاسه نورانی امیر المؤمنین و هم در این نوبتی که جلسه پایانی این دوره از بحث و گفتگوست قسم دیگری و فقره دیگری از سخنان حضرت رو بازگو میکنیم و امیدواریم که تأثیر کلام نافذ همیر المؤمنین بر دلها و جانهای ما برای همیشه مندگار و پایدار باشد الله. کلام در این بود که امیر فرمود برای اون که خداوند این رزیلی که بر از درون سینه بندگان خیش و جان اونها بدر کند ساز و مختلفی رو ذات حق قرار داده است برای تربیت نفوس انسانها من جمله اینکه که اشاره فرمود حضرتش که خداوند خانه خیش رو به گونه قرار داد که هیچ جاوذه به ظاهری از جهت شکوه مادی در اون نباشد نه جغرافیای سرزمین مکه به نوعی باشد که انسانها ها را به سوی خیش جذب کند و بکشد که موجب فخر و تفاخر باشد نه حال و هوای خود این سنگ و اشجار با تمام این خصوصیات و مشقات ممکن اون حضرت باری تعالی انسان ها رو فرا خواند از اقصانقات و اقتاب عالم بیایند و تمام حیثیت ها و انانیت ها رو زیر پا بگذارند تعبیر زیبای حضرت این بود که اینها رو بخواند ذات حق زند اینها رو بیان تا یه مناکبهم که به هم تکان بخورد چانه های اینها و یحللون لله حوله اینها در نهایت تواضع و خضوع ما گفتن لا اله الا الله و تحلیل الهی پیرامون این خانه بچرخند یرملون علی اقدامهم اینها حالت ترمل داشته باشند همان حالتی که توضیح دادیم هروله است فرو بریزند از خودشون تمام حیثیت ها و انانیت ها را قد نبزو سراویل و از سراوی ظهوره هم جامع از تن به کنن شب هو و اعفا شور زیبایی های ظاهریشون رو به کناری بگذارند محاسن خلقیشون رو رها کنن محاسن خلقه هم ابتلاعا عظیمن و امتحانا شدیدن و اختبالا مبینا این سواجه این که مدام در این خطبه همیر المومدین این سکمه رو میگن امروز هم خواهیم گفت و توضیح ها هم داد باز بیشتر از قبل تمحیصن بلیغان، تلخیص میکند تمهیس میکند به این چی به خداوند. این سینه ها را از چبر و حسد و حقد هنگامی که چنین می آین و این گونه سر تعبد می نهند و با این خصوصیات در این اقیانوس بیکران انسانی آدمیان محو می شن. گم می شمن. به تعبیر اون بزرگ در این بیابان خسی نشوی کسی نشوی انگامی که اینها خس میشن در این بودی و در میان این اقیانوس انسان ها کار بونجای میرسد که دیگه کبری نمیماند در این سینه ها که بخواهد تفاخری باشد هنگامی که این هزاران صدها هزار بفرمایید میلیون انسان با این شیوه یکسان و مستقل اقدام رو میبینند به چه چیزی میخواهد حسد در این سینه بماند حقد در این سینه بماند تمع در این سینه بماند انگامی که محو و جذب این فضا میشن اما یه مانع و یه مشکلی وجود داره که امروز میگیم خدمت دوستان امامت رحمی فرمان جعله الله رحمت خداوند خداوندین رو اسباب رحمت خود قرار داد و وصلتن الى جنته به این را آمر و رسیدن به جنت و به هشت این رو در حدیث داریم فراوان نمونه متعددی در حدیث داریم که وجود اونباره که مثلا صادق آل رسول مراسم رو به پایان و تمام شد اعمال حج ایستادند کنار خانه به یاران خیش فرمودند من تاف به حاض البیت مشابه این تعبیر کسی که توافی به این خانه کند نماز در پس این مقام بگذارد سعی چنینی کند مجموعه اعمال رو حضرت توضیح دادن و گمان کند تصور بفرمایید و گمان کند که هنوز بر دوش او زنبی باقی مانده است زن سوء به خداوند برده است زن سوء به خداوند برده است گویو این فریضه الهی اونقدر ظرفیت دارد که انسان رو از نو بسازد متولد کند بازآفرینی کند وجود انسان رو به هنگامی که تمام می شود این اعمال فرمود وجود که خداوند اشاره می کند به اون ملائکه ای که یتلق المتلقیان عن الیمین و ان شمال قید به این فرشتگان ویژه دستور میدهد دهد استع عمل از نو بنویسید کتاب عمل را پرورنده رو دوباره باز کنید از نو بگشایید وصلتن الى جنته با تمام این خصوصیات ذات حق این رو و این خانه و اعمال اون رو پلی مستقیم برای حصول به جنت و رزوان خیش قرار داد این پایان عرائز دیروز بود که خدمت دوستان گفتیم و اراده سبحانه ان الحرام اگر خداوند از اینجا عبارت رو پیگیری میکنیم اگر اراده الهی بود که قرار دهد خانه خودش را بیت حرام اون خانه امن مکرم و محترم را و مشائره الاظام و مشائر معظم و مبجل و بزرگان را کلمه مشاعر از ماده شعیره میآید مشعر، مشاعر، شعیره به معنای نشانه منطقه ای که بسیار به چشمی آید شعیره میگویند و از همان شعائر رو دیگه میفرمایید و من یعظم شعائر الله فه انها منطقه و القلوب خیلی از اعمالی که شما انجام میدید شاعر الله نیست اگر شما در سهرگاهان درون منزل در خلوت برخاک می افتید تحجد می زیباترین ایامه با اعمال عبادی رو انجام میدید، از شاعر الله نیست اما اگر در صف اول نماز ایستادید با حضور مسلمانان ارکع و مراکعین شکوه اسلام رو نشان دادید این شاعر الله هست یعنی نشانه هایی که چی میشه خوب به چشم میآید و دیده می شود اینها رو شاعر میگن. گن فهمود و مشاعر حل ازام همین مشاعر را بفرمایید عرفات را مشعر را منا را تمام این مواقف را میگید چی؟ میگید مشاعر تمام اینها مشاعرند و مشاعر هلعظام اگر خدا اراده میکرد اینها رو خوب اینات بفرمایید قرار میداد بین جنات و انهار در یک فضا و محیطی سراسر جنت و بستان و سرسبز و آبهای فراوان و و دست یافتنی قرار آرام امن جم اشجار جمل اشجار جمع به معنای کثرت فراوانی دیگه زیباترین فضای سبز رو خداوند با پرترین و انبوهترین اشجار قرار میداد دانی از سماار درختان و که میوه آن اون نابترین میوه ها و نزدیکترین و دسترسترین میوه ها برای انسان و پرسمر باشد ملتفل بنا اگر اراده میکرد این خانه در جایی قرار نیداد که التفه اون تعبیر الفاف رو که خداوند در مورد بهشت بکار میبرد تو در تو فرو رفته انبو دارای بناهای انبوه سر به فلک کشیده و دارای امارات تحجیب و متصل القرآن این آبادی ها متصل و وابسته و پی بسته به هم دیگر نه بیابانی باشد نه رملی باشد نه سنگلاخی باشد بین بره تن سمرا. چشم نگاه کنید بره و گندمزاره های گندمگون اون چنانی رو ببینید مزاره سل سبز خرم رو ببینید و روزتن خزرا استان ها روزه فضای سبزی که اطراف اون با چی گرفته درختان زیبا چشم نواز خود این سبزه وزند. و و روزتن خزرا و اریافن مهدقه آبادی ها اریاف ریف روستا آبادی و اریافن مهدقه دورای حدیقه حدیقه یعنی باقهای خیلی منظم محصور کاملا محفوظ اریافن مهدقه و اراعس مهدقه اراعس از همون میاد یعنی خانه و اراعس مهدقه خانه های بسیار سرشار قدقه به معنای فراوانی است به همین خاطر ما انقدقا در در تحبیرهای شریفه داریم آب سرشار فراوان جاری خانه های بسیار انبوه زیبای عالی فراوان بدون کاستی بدون کمی و ریاض نازره چشم سهاره ها بستان های چشم نوازی که چشم رو خیره میکند کند و تراغن آمره راه ها مسیر های اونچنان دستیافتنی آسان آبادان بسیار لذت بخش اگر خداوند میخواست، چنین کاری را انجام میداد. اما خداوند این کار را نکرد من قبل از اینکه که ادامه سخن امیر رو بازگو کنم یه پیش درامدی رو بازگو می کنم محضرم که دوستان با اونگاه کلام حضرت رو گماند میکنم بهتر دریابیم که این دوستان عزیز ازالوت می میفرمایند. میگن گنه ما آزمیم داریم میریم حج داریم میریم عمره یه جمله‌ای رو شما بگید حالا بالاخره ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش اما اون چه به ذهن میآید؟ آید می‌کنم به دوستان که یه, م... یه مشکل ما در این سفر داریم که موجب می شود این سفر از کف می رود همه اون چه لیروز خدمتون گفتیم از کف میره. اون که از زبان ایمام صادق گفتیم از کف می روید، یه چیز عزیزا، یه کلمه است، قفلت، قفلت، یعنی من در میان جمع و دلم جای دیگر هست، آیا وجود حاضر قائب شنیده ای؟ یعنی این بنده خدای مؤمن از اسفهان حرکت میکنه میرود می, می مدینه و مکه، اما جسم او به مکه و مدینه می و روح و او و فکر و او و خیال و او در کوچه خیابانهای زندگی، مشکلات کاری، اداری، بچه ها، خانواده و امورات است الان همچه دیگه با این امکانات ارتباطی دیگه مدام در حال آمده شده فکر و اندیشه بین اسفحان به اونجا است. هیچ قراری در اون سرزمین ندارد قافل محض، دل رو گزارده است رو تن برده حج تواف حضرت خانه بود حج رب بل بیت مردانه بود ما تن رو به تواف که نمی بریم ازیزان این جان شماست وجه ال من الناس تحوی الهی چی میگه خداوند؟ خدا یا ابراهیم میگوید خدای دل مردمان رو متوجه این خانه کن اگر تن برود و جان نرود عزیزم این یه خشک است اما متاسفانه ذهن و خیال و فکر نرفته از روح و جان نرفته از و تن رفته ایه قفلت مهمه گاهی من به این دوستان میگم میگم میتوانید تحمل کنید این جملهی که من به شما میگم اظهار میکنن بله با کمال تندی و درشتی عرض میکنم به این عزیزان اگر توانستید این تصور تصور رو در ذهنتون بیارید خوب دقت کنید خواهران و برادران و بزاد که برید به مکه و مدینه و حج و بر نگردید آمادگی آن رو داشتید که بروید و بر نگردید بدونید به قله حج رسیدید به قله این وحس رسیدید که ففر رو الله این فرار الله سوره مبارکه زاریات چیزی جز این نیست گریختن از همه تعلقات و پیوستن به آقوش حضرت جانان این قفلت ها نمی گذارد این یه قفلت انسوییست قفلت بیلونی پشت سره یه قفلت انسویی داریم عزیزان یعنی وقتی میره انسان وارد اون فضا میشن خیلی از این دوستان حالا دیگه گاه بینید چشم ها این طرف اون طرف هست به امارات و به شیوه بنا و مهندسی این هتل نگاه میکنه به کیفیت این وسیله نقلیهی که دارن جا به جا میشن نگاه میکنن به خدمات جاری که در کاروان محترم داده میشه من درمیش ارز کردم سخت که حج زیارت ایران ارائه میکند کم نزیره سخت افزارش نزا خیلی از دوستان اضافه وزنم پیدا میفرماند وقتی برمیگردن این حالات دست میده متاسفان اما نرمفزار مشکلات خاص خودش رو دارد وقتی میرند اونجا خیلی از این دوستان ذهنشون این طرف اون طرف این قفلت ها قفلت ها میاد میگیرد وجود را از مات میمانند به هاشیه میبردازند رضا نتیجه معلومه که چی میشه به چی دستگیر اینها میشه جان مطلب امیر در اینجا همین از عزیزان امام میفهمد خداوند در حقیقت کاری کرد که این خانه فضای اون پیرامون اون جغرافی های اون ای برای چشیدن این تمه ای برای جلب نفس انسان نداشته باشه قفلتی وجود ما را نگیرد که از دل اون قفلت کبر و حسد و تمه برون کشیده می شود و پرورش پیدا می کند و این نکته عجیبی, عجیبی است اگر کسی به این سفر برود عزیزان ببیند و نبیند بشنود، و نشنبد اونگاه نتیجان میشه که از درون میبیند و از درون میشنود. امام فرمود خداوند اگر چنین کارهایی را انجام میداد نسبت به این سرزمین، دکان قد سقره قدر الجزا جزاء حسب عافل بلا نتیجه آن میشد که اون جزا و نتیجه ای که میخوان مردم بگیرند از این کعبه خیلی این کوچک میشد و کم اهمیت میشد و کم میشد خیلی کم میشد نتیجه اون یه هفته بیشتر بعد از هج نمیمанд یه ماه بیشتر نمیماند اصلا علا حسب زعف البلا بدلیل این که دیگه خیلی از ابتلاعات و خیلی از درگیری هایی که در وجود انسان در غیر این صورت می آمد پیش نمی آمد ولو کان الاساس المحمول علیها اگر اون اساس اساس اون زیر بنا پایه های اولیه اساس بنا اگر اون اساسی که این خانه برون قرار داده می شود ول احجار المرفوع به ها اگر این سنگ هایی که این خانه با آن بلند می شود به این از ظمررد خزرا خداوند اینها را از جنس زیبا ترین سنگ های و زینتی قرار میداد اینها رو زمررد سبز قرار میداد یا قووط همراه و قرمز قرار میداد جنس اینها رو و نورن و زیاه اینها را از جنسی قرار میداد که طعل و خیره کننده در قرار, قرار می داد ذات باری تعالی. لخف لخف فذلك مسارعه تشكف صدور ولوز ام مجاهده ابلیس ان القلوب همان میشود که در مورد انبیا فرمود که اگر انبیا صاحب زر و زور و اد و قدرت می بودند مردم به دلیل این متاع به آنها متوجه می شدند اگر کعبه این چنین بود دیگه مردم از این سو و اون سو عالم میرفتن که کعبه رو به عنوان یک بنای باستانی تاریخی زیبای لوکس مانند اون که باغ‌های معلق مق... نمی‌دونم بابل رو میخواستن برن ببینن نمی‌دونم فلان امارات کجا رو ببینن برج فلان جا رو ببینن مردم قسطون میکردن که به این منظور برن کعبه رو هم ببینن که یاقوتون ببینند و تماشای جمال این چنینی بکنن. دیگه اونجا قطعا مردم تواف تن می کردن نه تواف جان و دل و پس سه جور دیگری میشد عجیب این جمله هستند. ببینید الان آن حیبت و حیمن ای که شما میرید، وارد مسجدال می میشید که رو می بینید و واقعا، افکنده میشه انسان در خاک همون لدل تا وارد میشید به خاک میفتید سجده میکنید وقتی جمال که رو میبینید اینها نیست اون تجلیات جلالت الهی است اثر که بریاوی خداوندی است در این خانه شما را محف میکند تسلیمتون می کند به خاکتون می افکند. یعنی دقیقا کبر ما رو هدف قرار می دهد متبازان ما را بر زمین می زند مبهوتمون می کند امام فرمود اگر این چنین می اونجا در اون صورت کاهش پیدا میکرد کرد مساره اتش صدور دیگه خیلی از تردیدها ابهامات خیلی از مجاهده های با ابلیس در وجود انسان نمی ماند. یعنی اون جازبه های ظاهری می کشید و دیگه آسان می کرد کار را دیگه نمی اومد. گاهی این تفکرات بیاد این رو هم بگم مالا پروانه می کنم از این که عرض کنم گاه ممکن است بعض از متدینین یعنی قفلتشون قفلت درونی است نمی‌خواستم دیگه به این بحث بپردازم یعنی گاهی شکوکی و وساوسی که از ناهیه شیطان می‌آید. به خاطر دارم یه وقتی در خدمت بعض از عزیزان یه جماعت قومی به حج آمده بودند و از یه سوی دنیا بالاخره اینها اعمالشون رو انجام داده بودند یعنی روزه عید قربان گذشته بود بالاخره به همه عزیزی و بزرگی محفلی منعقد شده بود گفتگو با اینها داشتیم خاطرم هست از ساعت 10:11 پیش از ظهر که مشغول شدیم چهار و پنج بعد از ظهر تمام شدون نشست یعنی شش ساعتی پنج ساعتی رو با این دوستان در ایراداتی که در حج داشتند بحث میکردیم روز یازده هم یعنی روز بعد از ایده قربان توجه دارید یعنی گاه این قفلت از درون میاد چرا پول ما را فلان جماعت بخورند چرا این قربانی این طور باشد چرا این اونچنان باشد چه اتفاقی میافتد؟ اگر احیانا انسان در این توافش این گونه تواف کند. چه الزامی می دارد که این طور باشد یعنی یه قفلت هایی که اینها به تحبیر هستند مسارعت شکف صدور یه شکوکی رو اینجا ابلیس تو جان و دل می آورد اگر خداوند رو پاره از مسائل کعبه و مظاهر اون بیشتر کار می کرد امیر در نهایت وضوح میفهمد این شکوک از بین میرفت. خیلی از این شکوک نمی بود خیلی از این مجاهده ها رو انسان با ابلیس نباید می داشت در وجود, در وجود خودش ولن نفا موت من الناس واقعا واسه به عنوان آخرین جلسه ها عرض میکنم خالصا خوشانن ذلیلن معترفن عرض میکنم واقعا نمیشه تصور کنه از بشر به این زیبایی این کلمات رو این محتوا رو در این قالب امیر بریزد و این عبارات رو به کار ببندد، لنفا اگر خداوندی زواهر رو میساخت و میآراست انسان ها اینطور بودن که معتلجرهی به منناس نفی میشد معتلج اعتلجه اون دریای پرخروش پر تلاتومی که موجها داره می این حالت رو اعتلاج میگویند. در اون صورت این اعتلاج شک و ریب آره بدگمانی های درونی پاره از بدگمانی های درونی و این تلاتوم ها از دل انسان ها اما دیگه فایده‌ای نداشت انسان‌ها جذب چه شده بودند؟ جذب این ظاهر رو جذب این زیبایی های بیرونی که هیچ نمی توانست درونشون رو بسازد بلکه درونشون رو، تمهشون رو، حرصشون رو و کبرشون رو بسا حتی افروخته تر میکرد و به نوعی اینها رو گرفتار تر می کرد ولن نفا معتل جل من الناس ولکن اما خدا این کار نکرد ولکن الله یختبر عبادهو به انواع شدائد اما این سنت است که خداوند اختبار کرد بندگانش را به انواع شدائد به نو نو جور جور و اقسام شدائد و دوشواری ها اختبار رو توضیح دادیم برون کشیدن درون این ظرفیت درون این شیه هست اما این ظرفیت رو نمیشه شما میتوانید این مسیر رو طی کنید گاهی این مثال رو من میزنم این مسیر رو طی کنید مثلا فر با یه ترعتی. اما یه مرتبه دارید بینید که یه کودکی داره شتابان میره وسط خیابون یه کودک خورتسالی داره میره وسط خیابون بچه یکی دو ساله دو سالی داره میده و میره شما با همین سن، با همین خصوصیات که در توانتون به ظاهر نبود یه شتابی رو میگیرید، یه شتابی رو میگیرید به تمام معنام این بچه رو در آغوش میگیرید، حفظش میکنید هر کسی ببیند متعجبه که آیا این یه فرد با این سن بود یا نمیدانم قهرمان دوی سرعت بود که به این شیوه رفت ببینید این ظرفیت درون وجود شما بود اما تو این صحنه رو شد نام این اختباره خداوند توانمندی هایی که در وجود انسان ها داده است شرایط بروز و ظهور آن را هم محیا می کند در زندگی فرمود و الله کندن لا یخه به راه باده و و دیگه این سنت علهی است. خوشییست ناخشی است. صحت هست ابتلاع و بیماری است. عزت است یعنی به تعبیری ذلت یعنی این یر نشستن ایستادن، دادن این طرف میز اون طرف میست. دادن قدرت گرفتن قدرت و ستاندن قدرت به انواع شدائد تعبد هم به بأنواع المجاهد خداوند انسان ها رو در مسیر عبودیت قرار میدهد با انواع مجاهد و جهدها ها و تلاش ها و گوشش ها نمیشه به غیر این عزیزان امکان نداره تریدون ادراك المعالي رخيستان ولا و دون شه من بر نحلی واقعا عجیبه حریدون ادراک المعالی رخیصتا اراده میکنید که به اون اولو و معالی برسید اما رخیصتا حالا ما بالاخره با اوجی برسیم به کمالی برسیم به معنویتی به معنای خدایا اونی که به سلمان دادی خدای اونی که به بیزر دادی خدای اونی که به مقدار دادی چی کم میشه از اگر به منم اون معرفت رو بدی باشد که بدهد مگه میشه خداوند به این چی عمل کند مگه این کند؟ این سنت الهی نیست رویه یه تربیه یه خداوندی نیست که یه مرتبه اتفاقی بیفتد نمیدانم دری باز شود بر دل و جان انسان چیزی بریزد این اسباب و مقدماتش رو خداوند به ما دادست باید در این مسیر به بادی قرار بگیریم و این اتفاق نمیافتد برای انسانها و لابد دونش نهت منع بر نهری خیلی زیبا گفته از شاعر عربین رو شما اصل رو میخواید اما نیش زنبور را نمیخواید. نمیشه و نابد دونش شهر من عبر النهل هر کرا میل و رغبتیست به گل گوبر و با جفای خار بسار امیر المحنین خداوند تعبد را بندگی را شکوه بندگی را حرکت در مسیر و عبودیت و بندگی رسیدن به قله تعالی را دست یافتن به انعکانس صفات خداوند در وجود انسان را از یک جاده ساده معمولی قرار نداده است پیچ و ها دارد فلق تحمل عقبه و ما ادراک کمل عقبه. عقب قرار داده نفس چاق می‌خواد وجود آماده می‌خواهد که انسان در این وادی به مجاهد حرکت کند که وقتی انسان تو این مسیر مجاهد قرار می‌گیرد عزیزان کبر له میشه حسد قربانی میشه تمه هلاك میشه وقتی انسان اما وقتی تنهایی ها تن تمبر... ها این گونه روش میاد نتیجه میشه توقعات بالا من قضی میخوام این جمله رو میگم خدمت دوست جبار یکی از مانی که در لغت عرب داره که در مورد انسان ها گفته میشه من لا یرا لعهدن علیه حق. اون کسی که برای هیچ کس به گردن خودش حق قائل نیست و از همه طلبگار است آفتی که بخشی از نسل امروز جامعه ما را تهدید میکند طلب کار از همه، هیچ بلهی هم به هیچ کسی ندارند. این میشه جببار. وقت خواب کل جبارین امید. نتیجه چی میشه؟ خیبوبه. حلاکت و از بین رفتن. حلاکت و از بین رفتن. این که انسان بدون مشقت بخواد بیشترین بازدهیرم داشته باشه. اما اگر انسان با بیشترین تلاش به میدان می آید، بهره خودش رو هم قطعا این چنین انسان در حد تلاشش قرار نمیده نام این معادله در اسلام چیست زهد یعنی بیشترین رو بازدهی اما به مقدار بازدهیش انسان بر نمیداره نام این زهد معقوله در اسلام نه جوراب وصله توجه دارین زهد حقیقی اسلام اینه فرمود و به المجاهد و خداوند اینها رو در مسیر بندگی و عبودیت قرار میده به عنوان مجاهد که اینها تمام سعی و تلاش رو و سختی ها و دشواری ها رو به کار می‌بندن خداوند تربیتشون می‌کند این سو اون سو گاهی می... حالا حال دیگه ناچاره‌ام میگم از باب که بازی مقداری برای بعض از دوستان همین قضیه رو ملموس تر کنیم و دشواری نیست الحمدلله لازم اینها آماده است در پهنای کلام امیرالمؤمنین بل اخر وقتی که این عزیز شما این کودک جنابالی این نوجوان شما شما نشستید پا به پاش تمام مسائل ریاضی ش حل کردید تمام تمرین های کلاسیشو نوشتید براش اجازه فکر کردن بهش ندادید اجازه بررسی و تعمل ندادید مادر محترم پدر بزرگوار شما اینو بکسلش کردید با خودتون در تمام مراحل تحصیل این کجا میخواد فردا شخصیت علمی بشه این کجا میخواد یه فرق شخصیت اجتماعی بشه شما اجازه رشد و اختبار رو بهش ندادید اصلا این حالات ایجاد نکردید براش اصلاً. این چطور می میتواند؟ مشکلات رو دارد شما عزیز من که تمام بار زندگی بار تلاش فرزندت رو به دوش کشیدی شما که تمام اون چه داشتی و گفتی من وجودم رو صرف فرزندم کردم تمام امکاناتش رو فراتر از حد تصور و نیاز او اگر توانستی در اختیارش قرار دادی کجا تصور میکنی این فردا به تواند مبتکیه به خودش در زندگی شخصیش باشه خداوند ما رو اینطور تربیت؟ نمیکنه. خداوند ما رو همان که گفتیم بلای نبلوون نکن بشه این منال خوف و لجو و نقص منال انفاد بل انفس دست نرود. خداوند افتنان میکنه، امتحان میکنه با همون معانی که شاریج کردیم میره به کوره. نخاله سیها گرفته میشه. اما انفادوکم و اولادوکم فتنه. از دل این فتنه در میاد انسان های وارسته. معنای واقعی انسان برون میاد با تمام توانندی ها و قدرتمندی ها و ظرفیت های ممکن انسانی علمند عملا. فرمود وناکنلله یختب راه باده به انواع شاید و یه تعبد هم به انواائل مجاهد و یا به تلی هم ب ذ وبلمکاره به خداون دیینها رو مبتلاشون میکنه، درگیرشون میکنند، درگیرشون می درگیرشون می, درگیر می کند ببینید؟ یه وقتایی در مدیریت در تفکرات مدیریتی بالاخره بحث این بوده است که ما شیوه حل درست مسئله را آموزش بدیم. ما بتونیم واقعا ذهن رو انقدر پرورش بدیم که وقتی با هر مسئله‌ای برخورد میکنه این ذهن آماده بتونه حل مسئله کنه. این مدیر در هر مشکلی که واقعی میشه بتونه مشکلات رو حل کنه. اما الان بحث این نیست. الان بحث این آموزش میدیم که ما چگونه مسئله درست کنه نه مسئله رو حل کنه. چگونه بتونه مسئله درست کنه؟ این ذهن ذهن آماده است که بتواند مسائل و بحران رو چگونه ایجاد کند که چگونه مرتفع کند توجه فرمایید خداوند این گونه زندگی ما را رقم میزند عزیزان من و یبتلی هم به زروب المکاره درون و برون در درون نفس و دیرون این مکاره دشواری ها سختی ها کوره ها این ها اینکه انسان وقتی کاملا مواجه میشه روبرون میشه بهش بعد دیگه این ها میشه شاخ قرور